فصل بیست و جوانی در روی زمین زود می گذارد. تا چه رسد به روی درختان که هر چیز چه برگ و چه میوه از آن بالا افتاده نیست کزیم پیر می شود. آن همه سالها آن همه شبها دست خوش یخبندان و باد و باران با سرپناهی سست یا بی هیچ سرپناهی نه خانه ای، نه آتشی نه خوراک گرمی، پیرمردکی کتوله شده بود، با پشت خمیده و پاهای تاب برداشته و بازوان دراز بوزینوار بالا پوش بلند و باشلق پوستینش او را به راه بی ماننده می کرد. صورتش از آفتاب سوخته و چون شاهبلوتی برشته شده بود. چشمان گرد و روشنش از میان هزار چروک چهرهش بیرون می‌زد. ارتش شکست خورده ناپل اون به برزینا رسید. نیروهای انگلیسی در جنوا پیاده شدند. هر روزمان به انتظار دریافت خبرهای تازه میگذشت گذشت. کزیما از اون رفته بود. بالا یک هاجی جنگلی در کنار جاده ی توب خانه و به سوی مشرق چشم می دوخت. ولی جاده خلوت بود و تنها آنان و گله و استرهای هیزم کش از آن میگذشتند. چرا انتظار می کشید؟ ناپل آن را دیده بود. انقلاب را میدانست که چگونه پایان گرفت. دیگر هیچ چیز نمی پیش بیاید. مگر بدترین چیزها. با این همه آنجا نشسته و چشم راه دوخته بود. پنداری هر لحظه منتظر بود که ارتش از ته جاده پدیدار شود. با سپاهیانی هنوز پوشیده از یخب و برف سرزمین روسیه و ناپل اون سوار بر اسب تبدار و رنگ باخته، ریش نتراشیده و سر در گریبان فرو کرده می و پایین کاج می ایستند. پشت سرش صدای گام های سپاه فرو می نشیند. سربازان خسته کوله ها و توفنگ هایشان را به زمین میاندازند. اندازند. کنار جاده مینشینند و چکمه هایشان را در میآورند. رشته های پارچه را از پاهای خون آلود خود باز می کنند و بناپارت میگوید: تو بود حتمتا. آن قانون اساسی را که نوشته بودی به من بده. طرهایی را که نه دولت انقلاب، نه دولت کنسولی و نه دولت امپراتوری از تو نپذیرفتند، با من در میان بگذار. باید کار را دوباره از سر بگیریم. باید دوباره درخت آزادی برپا کنیم و میهن جهانی را نجات دهیم. شک ندارم که امید و آرزوی کازیمو این بود. ولی آنچه روزی از روزها از ته جاده به چشمش آمد، درست عکس این بود. بر جده توبخانه، سه مرد لک و مرد نخستین لنگ بود و چوبی زیر و داشت دومی سر زخمی خود را با پارچه پیچیده بود. سومی وضع بهتری داشت و تنها یکی از چشمانش را با پارچه سیاهی بسته بود. ژندهپاره پاره رنگ باخته ای به تن داشتند. یراق روی سینه پاره پاره پار بود. کلاه هایشان مچاله و شکسته شده بود. و روی یکی از آنها هنوز پرهایی دیده میشد. چکمه هایشان سراسر چاک داشت. از ظاهرشان چنین برمی آمد که از گارد امپراتوری بودند. اما جنگ افزاری نداشتند. یکیشان قلاف خالی شمشیری را در دست داشت، دیگری لوله تفنگی توفنگی را چون چوب دستی روی شانه انداخته و بخچه ای را از آن آویخته بود. راه رفتنشان به مستان میمانست و آواز میخاندند. از سرزمینم، از سرزمینم. برادرم پرسید. «آی غریبه کی هستید؟ یکی از آنان گفت. ببین چه پرنده <تصفح> آن بالا چه کار میکنی؟ میوه ی کاج میخوری؟ دیگری گفت میوه ی کاج؟ غیر از این چیزی نیست که ما بخوریم داریم از گرسنگی میمیریم کشنگی را بگو نمیدانی برف خوردن چه آتشی میآورد. ما هنگ سوم سواره ایم همه ی هنگ باقی مندش. سه نفر از نفر بدک نیست برای من مهم این است که خودم زندم معلوم نیست هنوز که به خانت نرسیده ای خدا بکشدت ما ایم که در استلیتس پیروز شدیم اما در ویلنا دمار از روزگار ما در آمد. آخ آخ بگو ببینم هرنده سخنگو این طرفا میخانهای ای پیدا می شود؟ بشگاه های نصف اروپا رو خالی کرده ایم و باز هم تشنیم. چون تنمان از گلوله سوراخ سوراخ است و شراب توی شکممون بند نمی شود. آنجایت هم سوراخ سوراغ است میخانه ای که نسیه بدهد. دفعه دیگر میایییم و پولش را می پولش را ناپل اون میدهد خه. نه، هزار می دهد. پشت سر ما می آید، می توانید صورت حساب ما را به او بدهید. کوزیما گفت، شراب این طرف ها پیدا نمی شود، اما اگر تشنید، رودخانهای در همین نزدیکی هاست. رودخانه؟ گور پدر تو و رودخانه جغد کسیف؟ اگر تفنگم را از دست نداده بودم تو را با یک گلوله میزدم و مثل درقاول کبابت میکردم نه من میروم و پاهایم را توی رودخانه میشویم دارد میسوزد آبی هم به آنجایت بزن <تصفيق> سرانجام هر سو سوی جویبار رفتند چکمه های خود را درآوردند و پاهایشان را شاستند. آبی به سر و روی خود زدند و به شستن لباسهایشان پرداختند كزیمو حتی صابونی نیز به آنان داد خنکهای آب مستی را از سر سرباز آواره پراند ولی همچنین شادمانی را نیز از آنان گرفت به یاد بدبختی خود افتادند غمگین و افسرده شدند ولی آب زلال دوباره شادشان کرد. دوباره سر حال آمدند و آواز خواندند از سرزمینم از سرزمین کزیمو دوباره به جایگاه دیدبانی خود در کنار جاده برگشته بود. صدای تاختی به گوشش رسید. یگان سواری در میان ابری از قبار پدیدار شد. سربازان اونیفورم های ناشناسی به تن داشتند. کلاهایشان بسیار سنگین بود. موبور و ریشو بودند و چهره در هم رفته و چشمانی سبز و نیمه بسته داشتند. کزیمو کلا از سر برداشت و داد زد چه عجب از این طرفا؟ سربازان ایستادند یکیشان به روسی گفت سلام چقدر دیگر از راه مانده کزیمو که از هر زبانی چیزکی که به روسی گفت سلام به شما چقدر راه به کجا مانده کجا میخواهید بروید به آخر این جاده. ها این جاده به خیلی جاها میرود شما می خواهید کجا بروید؟ پاریس آها پاریس برای پاریس راه‌هایی از این بهتر هست نه پاریس نه میخواهیم برویم فرانسه دنبال ناپلئون این راه به کجا می روید؟ به خیلی جاها بسولیوه پیترا تراپه چه؟ بسا علیوه؟ نه نه اگر بخواهید به مارسی هم می آه مارسی مارسی فرانسه نگر در فرانسه چه کار دارید؟ ناپل اون آمد و با تزار ما جنگید حالا تزار ما دارد ناپل آن را دنبال می کند خودش شما ها مال کجایید؟ خارکوف، کیف، رستوف هی hey, بابا چقدر راه آمده اید. چه جاهای خوبی که ندیدید؟ از کجا بیشتر خوشتان میآید؟ اینجا یا روسیه؟ چه خوب چه بد روسیه را بیشتر دوست داریم صدای تاختی آمد قبار انبوهی بلند شد اسبی ایستاد. افسری سواران بود که بر سر قضاوان داد زد چرا ازدادید؟ به پیش سربازان به کازیم و بدرود گفتند و به های خود مهمیز زدند افسر روسی پای کاج ایستاد. لاغر و بلند بالا بود و چهره غمگین و رفتاری اشرافی داشت سر رهرحنش رو به آسمان ابری افراشته بود به فرانسه به کازیمو گفت؟ سلام آقا زبان ما را بلدید؟ برادرم به روسی و فرانسوی گفت برای بله جناب سروان ولی نه به آن خوبی که شما فرانسه را بلدید اهل این طرف ها هستید در زمان فرمانروایی ناپل آن اینجا بودید؟ بله جناب سروان و از چطور بود؟ خودتون بهتر میدانید؟ نیروهای نظامی با هر فکر ای هم که از راه برسند چیزی جز خرابی به بار نمیآورند. بله، ما هم خیلی خرابی به بار میآوریم اما هیچ فکر تازه‌ای همراه خودمان نی آورده ایم. با آنکه از ارتشی پیروزمند بود، افسرده و نگران خزی مدرش به حال او سوخت و به دلداری گفت: شما که پیروز شدید. بله، خیلی خوب جنگیدیم. خیلی خوب. اما شاید نعره شنیده شد. سپس آوای گنگی و صدای چند شمشیر به گوش رسید. افسر داد زد. چه خبر است؟ چند قزداغ آمدند. پیکرهای نیمه به ای را کشان کشان میآوردند شمشیر خونچکانی را به دستی و سر جولیده یکی از سه سپاهی مست فرانسوی را به دست دیگری داشتند. گفتند فرانسوی، ناپل اون، همه را کشتیم. افسر جوان به تندی دستوری داد و قضاقها کشته را از آنجا دور کردند. سپس رو به کزیمو کرد و گفتگو را از سر گرفت. بله جنگ. سالهای سال است که من در این کارم. این کار وحشتناک. یعنی جنگ. و تا آنجا که میتوانم از خودم مایه میگذارم. همه این کار را هم برای آرمانی میکنم که حتی برای خودم نمیتوانم. توجیهش کنم. کزیمو گفت. من هم. سال هاست که برای آرمانی زندگی می کنم که خودم هم نمیتوانم توانم توجیهش کنم ولی کاری که من می کنم هیچ بدی ندارد بالای درخت ها زندگی می کنم حالت افسر رفته رفته از افسردگی به بیتها گراییده بود گفت خب باید رفت سلامی نظامی داد و همچنان که می رفت گفت خدا حافظ آقا اسمتان چیست؟ کزیمو فریاد زد تا به گوش او برسد. بارون کزیمو روندو اسم شما چیست جناب سروان؟ اسم من شاهزاده آندره آوای تخت اسب نام خانوادگی او را نشنیده گذاشت.